به نام خدا با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز داستان دختر پادشاه یک افسانه دختر پادشاه ای از مردم بم در کرمان است این افسانه همراه با تحلیلی روانشناختی توسط خانم فرزانه سجادپور در کتاب قابل توجه فسون فسانه آورده شده است در بخشی از تحلیل میخوانیم دختر اسبها را میبلعد اسب مذهر آزادی پیروزی حرکت فراوانی و هوش است او با خوردن اسبها فراوانی و زکاوت و هوش را از سرزمین پادشاه دور و محو می کند چونان که وقتی پسر به پدر اطلاع می دهد که خواهرش خورنده از پاست پدر بیخردانه به حرف پسر می خندد و خود از بین رفتن و تباهی مبلکتش را فراهم می کند. و وقتی پسر بعد از رفتن و ترک کردن سرزمین اولیه دوباره به آنجا برمیگردد جز خرابی و ویرانی چیز دیگری نمی بیند. در کتاب فسون فسانه نه افسانه تحلیل و تفسیر شده که در زمینه تحقیق در ادبیات عامه ایران روش خوبیست شما رو به شنیدن داستان دعوت میکنم روزی بود و روزگاری در گوشه ای از دنیای بزرگ پادشاهی بود که با زن و تنها پسرش به خوبی و خوشی زندگی میکرد پادشاه قصه ما هر چیزی که دلش میخواست رو داشت و فقط و فقط در آرزوی داشتن دختری بود که پرستار و مونس روزهای پیریش باشه. تا اینکه بالاخره زن پادشاه حامله شد و پس از نه ماه و نه روز و نه ساعت انتظار، خدا آرزوی پادشاه قصه ما رو برآورده کرد و، دختری که مثل ماه شب چارده قشنگ بود بهش داد. پادشاه که خوشحالیش حد و نهایت نداشت دستور داد که جارچی جار بزنن و اعلام کنن و مطرب ها هم ساز و نوا بپا کنن که پادشاه شهر ما دختری داره مثل ماه خلاصه. همه جا جشن گرفتن و بسات شادی هفت شب و هفت روز در تمام سرزمین پادشاه شد. پادشاه قصه ما که دیگه کاملا احساس خوشبختی می کرد و قصهی نداشت اما تنها ناراحتیش گم شدن اسب های پادشاهی بود که از همون شب اول تولد دخترش شروع شده بود و هر شب یکی از اسب مخصوص پادشاه گم میشد و جز مقداری خون چیز دیگه ای باقی نمیموند اونجا پادشاه که میدید پسرش حالا داره کم کم بزرگ میشه و باید راه و رسم پادشاهی رو یاد بگیره یه روز پسرش رو صدا زد و بهش ماموریت داد که امشب میری دو و قاتل اصبهای ما رو میگیری و شایستگی خودت رو هم به ما ثابت میکنی پسر پادشاه گفت به چشم و همون شب خودش رو توی یکی از آخرها یا استبلها پنهان کرد و منتظر شد تا ببینه کیه که از اسب پادشاه هم نمیگذره نیمه های شب بود که دید اسب ها ناآرامی میکنند خوب که نگاه کرد دید یک موجودی که قد و قامت چندانی هم نداره وارد اصطبل شده و یکی از اسب های شاهی رو که معلوم نبود چجوری کشه داره میخوردش چشمای پسر پادشاه که حالا به تاریکی عادت کرده بود دید جلل خالق این موجود خونخوار کسی نیست جز خواهر کوچیکش که به جای شیر داره خون و گوشت و پوست میخوره و انگار که چندین ساله که جز این چیز دیگه این نخورده حالا با چیکار کار کنه چی کار نکنه هیچی نگفت تا خواهرش رفت و بعد خودشم از اونجا رفت صبح که شد اجازه ورود به خدمت پادشاه یا پدر رو گرفت جلوی تخت پدرش که رسید تعظیمی کرد و گفت پادشاه به سلامت باشه دیشب بالاخره تونستم قاتل اسبهای شاهی رو شناسایی کنم و اون کسی نیست جز خواهر کوچیک خودم که دیشب جلوی چشم خودم یک اسب رو درسته خورد پادشاه که اول خیال کرد پسرش داره شوخی میکنه خندید اما وقتی که دید یه برادر چطور خواهرشو داره متهم میکنه از اونجایی که خیلی خیلی دختر کوچیکشو دوست داشت پسرشو سرزنش کرد و پسر که دلخور شده بود و دیگه جایی رو تو اونجا برای خودش نمیدید یه آزوقه و غذای مختصری رو تهیه کرد و پدر رو مادر رو خواهر و, و قصرشون رو ترک کرد و زد به رفت و رفت و رفت تا وقتی که از شدت خستگی دیگه توان راه رفتن براش نموند کنار یک نهر آبی نشست و اون بخچهی قضا و آزو باز کرد نون و خرمایی که توش داشت و خورد و هستهای خورما رو لب همون جوی آب کاشت که شاید یه روزی این درخت بشه و درخت هام سایهی به رهگذرها گذرها بدن و دعای خیلی در حق او بکنن که این درختارو کاشته شب رو همونجا به صبح رسون صبح سهر راه افتاد ساعتی که گذشت گذرش افتاد به یک که کمی دورتر از جاده قرار داشت وقتی نزدیک خرابه رسید دید از داخل خرابه صدایی میاد به خودش جرأتی داد و صدا زد تو این خرابه کیه؟ جنی یا آدمی؟ غولی یا پریزادی؟ لحظه ای که گذشت از داخل خرابه جواب اومد که تو کی هستی که از اسم و رسم ما میپرسی؟ چه کار به کار ما داری؟ راه تو بگیر و برو و ما رو به حال خودمون بذار؟ پسر پادشاه که دید صدای آدمی زاده ته دلش آروم شد و گوشه ای از سرگذشتش رو برای اونها گفت و اضافه کرد که حالا هم جایی رو ندارم و در پناه خدا دارم میرم تا خونه و لغمه نانی رو پیدا کنم همون صدا دوباره بلند شد که بیا داخل که خونه ما خونه تو هم هست پسر پادشاه که از خدا میخواست یک سرپناهی پیدا کنه رفت داخل و دید بله پنجتا دختر که هر پنجتان چشمهاشون به این دنیا بسته و نابینا هستند با تا بوز و مقداری خیرت و پرت در نهایت فقر زندگی می پسر پادشان نشست و از احوال دخترا پرسید دختر رو جواب دادن که ما پنج تا خواهریم و همینطور که میبینی هر پنج نفرمون نابیناییم اما گله و شکایتی نداریم پنجتا تا بوز داریم که شیر و کشکشون غذا و پشمشون لباس ماه تو هم اگه میخوای پیش ما بمون و برادر ما باش و تاج سر ما شو روزها میتونی بری دنبال بزها شبها هم چشم بیدار ما باشی خلاصه پسر پادشاه با پنج خواهر نابینا عهد خواهر و برادری بست و شب رو همونجا صبح کرد صبح صحر که میخواست بزها رو ببره صحرا خواهر بزرگتر جلوشو گرفت و گفت خب برادر حالا که داری میری صحرا خیر پیش اما کمی که از اینجا دور بشی به یه دوراهی میرسی باید چشگوشتو گوشتو باز کنی و مواظب باشی که نه بزها برن به سمت چپ اون را نه خودت پاتو تو اون بذاری که اگه رفتی رفتنت همان و رنج و عذاب نابیناییتم همان روزگاری به این شکل گذشت و پسر پادشاه هر روز بزها رو به دشت و صحرا میبرد و میچر و شب که میشد برمیگشت پیش خواهرهاش و از اونچه که دیده بود برشون تعریف می کرد. از طرفی چون پسر پادشاه نابینا نبود و دشت و صحرا رو خوب میدید. بوزها رو به جاهای سبز و پر علوفه میبرد و به این ترتیب شیر بزها بیشتر شده بود و حال و روز خواهرها هم بهتر. یه روزی از روزا، پسر پادشاه که حالا دیگه یه چوبان درست و حسابی بر خودش شده بود، در گوشه ی از صحرا خوابش برد. ساعتی گذشت، از خواب که بیدار شد، دید خبری از بزها نیست انگار آب شدن و رفتن به خورد زمین همه دشت و صحرا رو تا غروب گش اما اثری از بزها نبود یقین کرد که چیزی که همیشه از اون میترسیده سرش اومده حتما و حتما بوزها همون جاده سمت چپی رو گرفتن و رفتن بره دنبال بوزها که هوشدار خواهرش یادش اومد که رفتن به جاده سمت چپ همان و نابینایی همان از طرفی اگه نمیرفت خودش و خواهرهاش دیگه از کجا نون بخور و نمیرشون به دستشون نمیومد این بود که دل رو یک دل کرد و زد به جاده سمت چپ رفت و رفت تا رسید به باقی که انگار باغ بهشت بود پر از درخت، گل، چشمه، حوز و یک قصر باشکوه هم وسط باغ بود پسر پادشاه که دید بزها صحیح و سالم دارن تو باغ میچرن خیالش راحت شد بزها رو جمع کرد و تا در باغ هم اومد اما دلش نیومد که از میوه های پر آب و خوشرنگ باغ بگذره و نخورده راه بیفتند پس برگشت و از هر درختی یه قدری میوه چید و مشغول خوردن شد میوه ها که تموم شد دوباره خواس راه بیفته گفت حالا که جای به این صفایی هست و منم خسته شدم چه بهتری که یه چرتی بزنم و خستگیم که در شد اون موقع برم پیش خواهرام پیش خودش خندهی هم کرد و گفت خب معلوم شد که چرا خواهرای من میگفتن به این راه نرو چون خودشون نمیتونستن از این همه زیبایی و نعمت استفاده کنن منو هم من کردن اما از حالا دیگه هر روز بوزها رو میارم همین جا و خودم هم دلی از در میارم پسر پادشاه با همین فکر بخواه حالا چند کلمه یم بشنویده صاحب باغ و قصر که دیو نابکاری بود که در همون چند قدمی پسر زیر یه بوته انگور خوابیده بود. بازهای زبون بسته که نمی دونستن کاریشون کارشون چیه داشتن از همون درخت برگ می کندند و می خوردن که ناگهان دیو از سر و صداشون از خواب پرید. دید اون چرا که نمی بلند شد و پسر رو دید که زیر درخت چناری خوابیده و از همه جا بیخبره فورا دیوه تناب و تسمهای پیدا کرد و پسر رو محکم به همون درخت بست و ترکی همکن و افتاد به جون پسر پادشاه حالا نزن کی بزن پسر که کم کم میفهمید چه بلایی به سرش اومده، خودشو نباخت و شروع کرد به بهبه و چهچه چه که چه خوش از ترکه انار و سایه چنار، و هی و تکرار می کرد. دیف که میدید هرچی بیشتر میزنه، پسر بیشتر خوشش میاد و تعریف میکنه، گف عجب آدمی زادی هستی تو، خواهرات که نابینا کردم بس نبود، خودت هم اومدی، حالا که ترکه میخوری به و چهچه میکنی؟ پسر که امیدوار بود نقشش بگیره، جواب داد قربان، شما که نمیدونی چه حال و مذهی داره، ترکه انار و سایه چنار، اگه میدونستی چه لذتی به من میرسونی، راه دیگه ای رو در پیش می گرفتی و شروع کرد به تعریف کردن که نه سایه چنار بی ترکه انار مزه میده نه ترکه انار بی سایه چنار و معجون این دوتا چونینه و چنانه خلاصه اونقدر گفت و گفت تا اینکه دی فریب فریبش خورد و پسر رو باس کرد و ترکه رو داد به پسر که بزن به من ببینم چه مزهای میده پسر پادشاه گفت نه اینجورم نیست هرطور تو بخوای کارو همونجوری انجام بدیم این کار راه خودش رو داره اگه میخوای لذت ببری باید محکم تو رو ببندم و بعد ترکی رو با تن و بدنت آشنا کنم دیو هم در دام پسر افتاد و پسر پادشاه که دیگه خیالش از بابت دیو نابکار راحت شده بود ترکه عنار و برداشت و حالا نزن کی بزن دیو هم فریاد و وا ویلا که کدوم ترکه کدوم سایه کدوم لذت تو که میگفتی چنینه و چنانه پسر پادشاه که فهمیده بود خواهرش رو چه کسی نابینا کرده ولکن نبود اونقدر زد که دیو به زاری و التماس افتاد گفت تو رو به شیر مادرت قسم دیگه نزن منم در عوض چشمای خواهراتو بهت پس میدم دیگه کاری به کار تو و اونا ندارم پسر گفت خوب داری کم کم سر عقل میای. اما اگه میخوای آزادت کنم بری علاوه بر پس دادن چشمای خوهران باید شیشه عمرتم به من بدی اگه یه روزی یه روزگاری دوباره حوس اذیت کردن من و خوهران به سرت زد من بتونم جلوی دیو نابکاری مثل تو رو بگیرم؟ دیو اولش قبول نمی کرد اما چند ترکه دیگه که خورد امان خواست و گفت حالا که چاره جزی ندارم قبول بیا و با همین ترکی که در دست داری زربه ای آهسته به چانه من بزن که کلید صندوق شیشه عمر من و چشمای خواهرت از تو دهنم بیرون بیفته کلیدو بردار، برو به قصر وسط باغ سمت چپ قصر که هفت تا اتاقه اتاق اول تا شیشم نه، توی اتاق هفتم یه صندوقیه که با این کلید باز میشه صندوقو باز کن و از توی صندوق شیشه عمر من و چشمای خواهرات رو بردار بعدم منو آزاد کن و برو سراغ خواهرات چشماشون رو سر جاشون بذار و هفت بار خدا رو یاد کن که علاجشون همینه پسر پادشاه رفت اتاقی که دیو گفته بود در صندوق و باز کرد و دید بله همونطور که دیو گفته بود چشمای خواهرش در شیشه ته صندوقه وقت اون بود که برگرد سراغ دیو. برگشت پیش دیو و گفت خوب دیو نابکار حالا میخوای که آزادت کنم بری؟ ها؟ اما خوندی؟ گیرم که دیگه کاری به کار من و نداشته نداشته باشی اما خودت خوب میدونی که از بد چیزی جز بدی نمیاد و همین الان که آزادت کنم میری سراغ یکی دیگه و همین بلا رو که سر خواهرای من آوردی سر یه بیچاره دیگه در میاری پس دود شو و برو به درک که بهتر از اون جایی نداری بعد هم شیشه ی عمر دیو رو به زمین زد و دیو هم دود شد و رفت به هوا. پسر پادشاه خوشحال شد و خدا رو شکر کرد و بوزهاش رو همونجا گذاشت و برگشت پیش خواهراش حالا بشنوید از خواهرای پسر پادشاه که وقتی دیدم برادرشون دیر کرده، نگران و ناراحت اومدن و جلوی خرابه ای نشستن و پیش خودشون فکر میکردن که پنجتا نابینا بودیم، حالا شدیم شیشتا و دوباره وضعمون میشه مثل سابق. در همین فکرها بودن که پسر اومد و صدا زد آهای دخترا بیاین که روزگار غم و قصه سر اومد و خورشید بخت و اقبالتون طولو کرد. دخترا پرسیدن کجا بودی؟ چه اتفاقی افتاد؟ پسر پادشاه هم ماجرا رو از اول تا به آخر تعریف کرد بعدم چشمای اونا رو سر جاش گذاشت و هفت بار خدا رو یاد کرد چشمای دخترا که بینا شد خدا رو شکر کردند و بلند شدند و هر چیز بدر بخوری که اونجا بود و برداشتند و رفتند به قصر که زندگی تازهشونو شروع کنن چند روزی که از زندگی اونها تو قصر گذشت هفت هفتا بچه جادو پیدا کردن و چون دلنازک و مهربون بودن از برادرشون خواستن که اجازه بده از اون هفتا بچه جادو هم مراقبت کنند تا بزرگ بشن و پی کار و زندگیشون برن مدتها گذشت تا اینکه روزی از روزها که پسر پادشاه که حالا دیگه خودش قصری و دم و دستگاهی داشت دلش برای پدر و مادرش و وطنش تنگ شده بود از خواهرش اجازه گرفت که چند روزی اونها رو تنها بذاره و بره دیدن پدر و مادرش که لابد بود پیر شده بودند کفش و کلاه کرد و توشه یا غذایی برداشت حافظی کرد و زد راه. اما قبل از رفتن به خواهرش سفارش کرد که هر وقتی دیدین که این هفته بچه جادو ناآرامی میکنن بتونید که یه بلایی سر من اومده فوراً آزادشون کنین که بیان و منو از گرفداری نجات بدم خلاصه پسر پادشاه، رفت و رفت و رفت تا رسید به جایی که فکر می کرد باید سرزمین پدرش باشه هرچه نگاه کرد اثری از قصر باشکوه پدرش و مردم و اون همه آبادی که قبلا بود ندید فکر کرد که اشتباه اومده میخواست برگرده و راهش رو عوض کنه که یک دفعه دید یه پیرزن اجروزی که قد و قامتی خمیده و گیس سفید و لباسهای پاره داره از سوی خرابه‌ای اومد. اومد و اومد تا رسید به پسر پادشاه. کمی که نگاش کرد گفت اشتباه نمیکنم برادر خورشید امروز از کدوم طرف در اومده که گم شده منو برگردونده؟ تو کجا بودی؟ کی اومدی؟ سالها بود که چشم به راهت بودم اونقدر نیومدی تا پدر و مادرمون پیر شدن و مردن بعدم قهتی شد و مردم دسته دسته و گروه گروه بارشون و بسن و رفتن فقط من موندم که چشم به راه تو بودم و منتظرت موندم تا بیای حالا تو بگو کجا بودی چه می کردی تعریف کن ببینم پسر پادشاه در حالی که هم تعجب کرده بود و هم از شنیدن خبر مرگ پدر و مادرش و نابود شدن پادشاهی پدرش ناراحت شده بود، در حالی که همراه اون پیرزن اجوزه به خرابه میرفت، خلاصه از سرگذشت خودشو گفت و اضافه کرد: حالا فقط اومده بودم پدر و مادرمونو ببینم و اصلا خیال موندن ندارم. تو هم که اینجا حال روز خوبی نداری، چه بهتره که با من بیای و در قصری که حالا مال من و خواهرامه با ما زندگی کنی؟ اجوزه گفت، حرفی نیست برادر، من که دیگه اینجا کسی رو ندارم که بمونم، منتظر تو بودم، تو هم که اومدی، حالا با تو میام. اما چون از راه دور و درازی اومدی و خسته بهتر یک کمی استراحت کنی و توی این مدت هم من بارو بنم و ببندم و اگه شد یک غذای توشه راهیم آماده کنم تو هم برای اینکه من از فرط پیری فراموش نکنم که دنبال چی رفتم با انگشت یواش و آرام روی این جام بلور ضرب بگیر ضربه بزن تا من برگردم بعدم رفت که بارو بونش رو جمع کنه و توشیب آماده کنه. پسر پادشان که حال و روز زار خواهرش رو دید و از طرفی از مرگ پدر و مادرش و نابودی شهر و دیارش ناراحت بود گذشته رو فراموش کرد و مشغول انجام کاری شد که خواهرش گفته بود خیلی از رفتن خواهرش نگذشته بود که از سوراخ دیوار روبروش یه موش بیرون اومد موش دوید اومد پیش پسر و گفت ای قافل نشستی به انتظار قاتل داری با دست خودت گور خودتو میکنی بدون و آگاه باش که تو اولین نفر نیستی که تومه تو خواهر میشی قبل از تو هم مردم شهر و هم پدر و مادرت رو خورده حالا هم رفته دندوناشو تیز کنه تا بیاد سراغ تو تو رو هم بخوره زود پاشو و تو نجات بده تا اون دندوناشو تیز میکنه من هم به جای تو با دومم روی این جام ضربه میزنم که متوجه رفتن تو نشه بلند شو, بلند شو از همون راهی که اومدی فرار کن پسر پادشاه که اینو شنید دنیا جلوی چشاش تیره و تار شد. اول خواست بمونه و شر این موجود خونخوار رو کم کنه. اما فکر کرد وقتی خواهرش تونسته نه تنها همه مردم شهر بلکه پدر و مادر خودش رو هم بخوره از دست اون دیگه کاری بر نمیاد. این بود که بلند شد و دو تا پا داشت دو تا پای دیگه هم کرد و فرار رو برقرار ترجیح داد حالا بشنوین از اون طرف که تا دختر خونخار دندوناش تیز شد و برگشت که همون بلایی رو که به سر مردم شهر و پدر و مادر و همه جوونای شهر آورده سر برادرش هم بیاره دید جاتره و بچه نی. و به جای برادرش موشی که با دومش روی جام زر گرفته بود خزید توی سوراخ دیوار اونم که انگار یک بار جوون شده دوید به دنبال شکار دختر بود و پسر پادشاه بود و. چیزی نکش که پسر پادشاه رسید به چهل تا درخت خرما که به ردیف لب جوی آبی سبز شده و قد کشیده بودن یادش اومد که روزی روزگاری خودش هسته این درختار رو کاشته حالا هم شاید جونشو نجات بدن. همون درخت اولی رو گرفت و رفت بالا هنوز بالای درخت نرسیده بود که دختر خونخار هم رسید اون هم درخت و گرفت و شروع کرد به بالا رفتن پسر پادشاه که عجلش و مرگش رو نزدیک و نزدیکتر میدید از روی درخت اولی پرید روی درخت دومی و به همین ترتیب روی سومی و چهارمی و همینطور تا آخر دختر خونخار هم به دنبالش اما در همین حال که دختر خونخار و پسر پادشاه در تعقیب و گریز بودن خواهرای پسر پادشاه دیدن که بچه های جادو بد جور بد میکنن لحظه آروم نیستن فهمیدن که اتفاقی برای برادرشون افتاده به سفارش برادر بچه های جادو رو رها کردن خلاصه پسر پادشاه به درخت شهلوم رسیده بود و دختر خونخار به درخت سی و که بچه های جادو رسیدن و دختر خونخار رو گرفتن و نیست و نابودش کردن بعد هم پسر پادشاه بزرگ خودشونو برداشتن و برگشتن به قصر و سالهای سال در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کردند. دختر پادشاه، فسون فسانه صفحه 67، فرزانه سجاد پور انتشارات سپیده سهر، چاپ اول، هشت شنوندگان عزیزم، امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید و امیدوارم در داستان‌های بعدی هم منو همراهی بکنید. همه شما رو به خدای بزرگ میزپرم. آیا تا به آرزو کردین که به سرزمین های را می سفر کنیم؟ جایی که ها و کوتوله ها زندگی میکنند <مبش> کانال هزار افسان همون که بالشه <مبش> جایی که داستان های افسانه ای و ای سراسر دنیا به صورت صوتی و جذاب برای شما روایت میشه کانال تلگرامی هزار افسان سفری به دنیای خیال و رویا سفری <مبش>